عشق تو نهال حیرت آمد وصل تو کمال حیرت آمد بس قرغی حال وصل کاخر هم بر سر حال حیرت آمد یک دل به نما که در ره او بر چهره نخال حیرت آمد نه وصل بماند و نواصل آنجا که خیال حیرت آمد از هر طرفی که گوش کردم آواز سوال حیرت آمد شد منحزم از کمال عزت آن را که جلال حیرت آمد سر تا قدم وجود حافظ در عشن حال حیرت آمد